الان دوستان عزیزه همراه کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصاتش ذکر شد داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام موگاروسی و پسرش روزگاری پسرکی بود که پدر و مادرش وقتی مرگ خود رو نزدیک دیدن مردی از آشنایان خود رو سرپرست اون کردند اما این مرد آدم بدنهادی بود و تمام پولی رو که پدر و مادر برای مراقبت از پسرشون به اون دادن خرج خودش کرد. پسرک تصمیم گرفت، پی وقت خودش بره و راه خودش رو پیش بگیره. پس یه روز به راه افتاد و از دل جنگلا و چمنزارا گذشت. همچنان به پیش رفت. شب شده بود و اونم بسیار خسته بود، اما نمیدونست کجا بخوابه. از تپه بالا رفت و به اطراف نگاه کرد تا ببینه نوری از پشت پنجره ها دیده میشه. ابتدا همه جا رو چاریک دید اما پس از مدتی در نقطه دور کورسسویی دید. شاد و سر حال فورا به طرف کرسو به راه افتاد. پاسی از شب گذشته بود و اون تازه به روشنایی رسید. اون کرسو آتیش بزرگی بود و. مردی بسیار بلند قد که بیشتر به قول میمونست کنارش دراز کشیده بود. پسرک دو دل مونده بود که چیکار بکنه. بعد اونم پایین پای اون مرد دراز کشید و به خواب رفت. صبح وقتی که مرد بیدار شد از دیدن پسرک خفته در کنارش واقعا شگفت زده شد. پسرکم هم همون موقع بیدار شد. مرد گفت پسرکم تو دیگه از کجا پیداد شده؟ پسر جواب داد، من پسرتم، دیشب به دنیا آمدم. مرد گفت، اگه اینطوره باید چوپونی گوزفنده رو بکنی، منم قضا تو میدم. اما حواست باشه که از مرز سرزمینم خارج نشی، وگر نپشیمون پشیمون خواهی شد. بعد با دست مرز سرزمین نشون داد و از پسر خواست، که فوراً کارشو شروع کنه. چپون جوان گردن را به پربارترین این چمنزارها برد و تا شامگاه چروند. بعد اونا رو بازگردند و به مرد در دوشیدن شیر کمک کرد. پس از این کار مشغول خوردن شام شدند. موقع خوردن غذا پسر از مرد پرسید پدر اسمت چیه؟ اون جواب داد مگارزی. در فکرم که از زندگی تو این جای دور افتاده خسته نمیشی؟ دلیلی وجود نداره که به دردت بخوره. نشنیدی که از قدیم گفتن خیرسو و رقصو بردیم؟ کی دیدی خرسی به میل خودش به پسر جواب داد درسته اما به نظر خیلی غمگین میای. داستان زندگی تو برام تعریف کن پدر. فایدهش چیه؟ شنیدنش فقط باعث ناراحتیت میشه مهم نیست دلم میخواد بشنوم آیا پدرم نیستی؟ آیا من پسرت نیستم خب اگه واقعا دوست داری قصم و بدونی برات تعریف میکنم گفتم که اسمم موگارزیه پدرم پادشاه بود سر راهم به دریاچه شیر شیرین که از اینجا خیلی هم دور نیست میرفتم تا با یکی از سپری که تو دریاچه زندگی میکردن عروسی کنم. اما تو راه سه کتوله پلیت به سرم ریختن و روحم و رو بودن. از اون زمان تا حالا اینجا زمینگیر شدم و بی اون که آرزوی چیزی داشته باشم یا لحظه ای شادمانی رو حس کنم یا حتی بخندم به چوپونی گوسفندا مشغول شدم. سکوتوله پلید به قدری بد سرشتن که اگه کسی پا به بزار سرزمینشون بذاره دمار از روزگارش در میارن. برای همین به تو هشدار دادم که حواست باشه و پا تو تو خاک اونا نذاری. پسرک گفت بسیار خوب، حواسم هست پدر و روی زمین دراز کشیدن و خابیدن. با طلوع خورشید. فسر از جا برخاست و گوسفندا رو برای چراب بیرون برد. به دلایلی اصلا وسوسه نشد که به چمنزار پر علفه کتوله ها بره. پس گوسفندا رو تو زمینه کم علف و خشک رها کرد تا خودشون غذاشون پیدا کند. روز سوم اون در سایه درختی نشسته بود و نیمی نواخت. کسی بهتر از اون در نوازش نی در جهان پیدا نمی شد. همون موقع یکی از گسفنده از حسار گذشت و خودش رو به چمنزار پرگل و علفه کتوله ها رسوند. دیگر گسفنده هم یکی یکی سرشونو پایین انداختن و دنبالش رفتن. به سرک چپان چنان غرق نینوازی بود که اصلا متوجه چیزی نشد تا اینکه نصف گرله به چمنزار اون طرف حسار رفتن. اون از جا برخواست و همچنان نی برلب دنبال گوسفندا رفت تا اونا رو به جای اولشون بازگردونه که ناگهان سه دوشیزه زیبا رو در برابر خود دید. اونا با شنیدن صدای نی به پای کوبی پرداختن. پسر فهمید که چه باید بکنه. تا جایی که توان داشت نی زد و دوشیزه ها هم تا غروب پای کوبی کردند. سرانجام گفت حالا بذارید برم، چون که مگارزی بیچاره طاقت گرسنگی نداره. فردا میام و بازم نیمی نوازم. اونا گفتن، خب، حالا برو، اما یادت باشه که زیر غلت نزنی. هرجا بری به چنگت میاریم. پس با هم قرار گذاشتن که نینواز روز بعد با گوسفندا به اونجا بره تا غروب خورشید براشون بنوازه. با این قرار، هر یک به خونه خودش بازگشت. مگارسی از اینکه دید گوزفنداش در مقایسه با روز قبل شیر بیشتری دادن، متعجب شده بود. اما چون پسرک گفت که هرگز از حسار و بور نکرده، زیاد به خودش زحمت فکر کردن نداد و سرحال و شاد شامش و خورد. با نخستین پرتوهای روشنایی بامدادی، پسر گسفندارو به چمنزار کوتوله ها برد. با اولین آهنگی که از نی براورد کتوله دوشی زگان پیداشون شد و تا شامگاه سرگرمه پایکوبی شدن. بعد پسرک نیا از نیونه انگشتاش ول کرد. نی بر زمین افتاد و اون الگار که اتفاقی بود اونو زیر پاهاش له کرد. اگه اونجا بودید و می دیدید که اون با از دست دادن تنها هم دم خود چقدر آهاناله سرداد و فریاد کرد و اشک ریخت حتما دلتون به حالش میسوخت. دلسه دل سکوتوله دوشیزه چنان به درد اومد که برای آرامش بخشیدن به اون دست به هر کاری زدن. اونا گفتن درخت گیلاسی تو باغ ما هست که دقیقا هفت ساله است. و ما بیا و با چوبش برای خودت نه یه دیگه ای درست کن. پس همگی به طرف درخت گیلاس رفتن. موقعی که دور درخت استادن جغل گفت که اگه بخواد با تبر درخت و قطع کنه به احتمال زیاد باید قلب درخت و از هم بشکافه تا بتونه از اون نهی درست کنه. برای اینکه مجبور به قطع درخت نشه برشی در تنه درخت ایجاد میکنه. درست به اندازه ای که اونا بتونن انگشتاشون رو از اون شکاف کوچیک تو ببرن. با این کار اون میتونه درخت رو دونی میکنه بی اون که به قلب درخت داسی برسه. کتول دوشیزگان بی اون که به جوانه به این کار فکر کنن قبول کردن. پسر جوان و برداشت پوست و شکافت و تو تنه شکافی ایجاد کرد. دوشیزگان انگشتانشون رو تا اول کف دست تو شکاف کردند. پسر جوان لبه ی تبر رو بیرون کشید که در نتیجه دستای گتول دوشیزگان محکم در شکاف گیر کرد. اونا به درخت چسبیدن و از درد فریاد برا بردن و سعی کردن خودشون رها سازد. اما باید ای نداشت. کاری از دستشون بر نمی و پسر جوان بیخیال خیال و التماساشون شد. اون از کتول دوشیزگان روح مگارزی و طلب کرد. اونا گفتن خب اگه خواستت همینه اونو تو ای کردیم و تو درگاه پنجره گذاشتیم. و امیدوار بودن که با این روش آزاد شد. اما اشتباه کرده بودن. جوان خیلی جدی گفت شما مردای بسیاری را عذاب دادید. حالا حق شماست که زجر بکشید. فردا صبح آزادتون میکنن. و گسفندارو پیش رندو به سوی خونه حرکت کرد. شیشه حاوی روح مگارزی هم در دستش بود. مگارزی منتظرش بود. پسر جوان که نزدیک شد، اون شروع کرد به سرزنش جوان که چرا اینقدر دیر کرده؟ اما هم که چند کلمه ای از حرفای اونو شنید، از شادی چالان به هوا جست که روح دروغین همون که کتول دوشزگان نصیب جسمش کرده بودن از دهنش بیرون جست و روح واقعی خودش که تو شیشه نگهداری میشد شد جاشو گرفت پس از اینکه که شروح هیجان تا حدی فروکش کرد با صدای بلند به پسر جوان گفت چه پسر واقعی من باشی چنه باشی مهم نیست فقط بگو چطور میتونم محبتی که در حقم کردی جبران کنم؟ فقط نشونم بده که دریاچه شیر شیرین کجاست و چطور میتونم یکی از سپریارو که اونجا زندگی میکنن به همسری خودم درارم. بعد هم باید قبول کنی که تا آخر اومد پسرت باقی بمونم. مگارزی و پسرش شب و با شادی و خوشی گذروند اونا برای خودشون مهمونی گرفتن و آواز خوندن و از بس خوشحالی کردن تا صبح نخوابیدن. با آغاز سپیده دو دوتایی به طرف درخت گیلاس که سه کتوله دوشیزه اسیرش بودن به راه افتادن. همین که به درخت رسیدن مقارزی دستاشو به دور تنهای درخت حلقه کرد و اونا از ریشه درآورد. آورد. بعد درختو با سه کتوله آویز و بردوش گذاشت و به سوی قلم پدرش راه افتاد. همه از دیدنش بر یادای شادمانه سر دادند اون هم با رضایت خاطر و از ته دل به همه گفت که پسر جوان نجاتش داده. پسر جوان سه روز تو قصر موند. درباریا پیوسته از اون سپاس گذاری می و لحظه از ستایشش دست بر نمی داشتن. بالاخره روزی به مگارزی گفت زمانش رسیده که از اینجا برم. اما از تو خواهش میکنم به من بگو چطور میتونم گچه شیر شیرینو پیدا کنم. به اونجا میرم و همراه همسرم باز میگردم. مگارسی بیهوده سعی کرد که اونا تو قصر نگه داره. اون خیلی تلاش کرد اما بیفایده بود. پس هرچی میدونست به جوون گفت. خب. هرچی میدونست گفت چون که خودش هرگز دریاچه را ندیده بود. سه روز تابستون پسر جوان نی در دست سفر کرد تا در یک شامگاه به دریاچه رسید. اونجا تو قلم پریه قدرتمند قرار داشت. همینکه که صبح شد پسر جوان خود را به کنار دریاچه رسوند نی را در آورد و نواختن آغاز کرد. هنوز آهنگ برخواسته از دل نی تو فضا پراکنده نشده بود که دید پری زیباروی کنارش ایستاد گیسوبان و جامش طلایی بود و تو روشنایی روز برق میزدم پسر جوون با شگفتی به پری مینگریست ناگهان به پای کوبی در درومد چنان حرکت میکرد که نینواز نینوازی و از یاد برده بود نی که نواخته نشد پری ناپدید شد روز بعد هم این اتفاق روی داد. اما روز سوم، اون به خود دل و جرعتی داد و کمی جلوتر رفت. پیوسته نینوازه میکرد. نگهان به جلو خیز برداشت. گیسوان پریو در دست گرفت و شاخه گل سرخ بر گیسوانش نشوند. پری فریاد کشید و از اون تقاضا کرد تا گلو برداره. جوون نپذیرفت و شاخه گل رو بر کلاه خودش نشوند و دیگه به خواهش او توجهی نکرد. سرانجام پری از بس خواهش تماس التماس کرد، خسته شد و چاره ای ندید که با تقاضای ازدواجه پسر جوان موافقت کنه. این آرزوی قلبی پسر بود. اون دو به سوی قصر به راه افتادن. مگارزی چشم به بود. به دستور پادشاه جشن عروسی با شکوهی گرفته شد. از اون زمان تا حال اونا هر ماه می به کنار دریاچه شیر شیرین میرن و همراه فرزندانشون تن به آب دریاچه می سپارن سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها ماشره از جادوگر ها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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسان داستان صوتی